تجربه ثروت معموی امشب وقتی به خانه برگشتم، تبتی منتظرم بود. موقتاً از اتاق خارج شد تا لباسم را درآوردم. دوش گرفتم و آماده املای درس او شدم. سپس بازگشت و در حالی که در اتاق قدم میزد سخن آغاز کرد. امشب میخواهم مقوله تجربه ثروت معنوی را مورد بحث قرار دهم از جایگاه سفیر روح میدانم سوالاتی در ذهنت هست که مدتها به دنبال پاسخ آنها گشته ای یکی اینکه چنانچه آرزوی قدرت خدا را در زندگی خود داشته باشی چه باید بکنی؟ البته نخست باید این قدرت را بشناسی. به منظور داشتن هر آنچه که در زندگی طلب می کنی، باید آنچنان با هوایان زندگی کنی که حقیقتا از آن تو شود. آنگاه دریفی کردن آن از تو غیر ممکن خواهد بود. طبیعت معنوی خدا و همه چیز جهانهای زیرین چون موم در دست قدرت کیهانی است. بنابراین آدمی استحقاق حکم راندن بر آن را دارد بر تو لازم نیست انان نیروی معنوی را به دست گیری چون همکنون آن را در اختیار داری لکن باید آن را بفهمی از آن استفاده کنی کنترلش کنی و را آنچنان از آن انباشته سازی که هر روز بتوانی به پیش تاخته و جهان را هم با خود به پیش ببری هر دقیقه ای که در مراقبه میگذرانی به تو نیروی حرکت می‌بخشد. بر عمق الهاماتت می افضاید. به تحقق مقاصدت کمک می کند در که تو را افزایش میدهد و به جایگاهی سوقت می دهدد که دریابی عالم نظامی زنده است که از دلهای تپنده بشریت پناه شده. عالمی از حیات و زیبایی برای عشق ورزیدن این را به خاطر بی‌سپارش وفور افزونی میآورد، اصلی است که در تمامی طبقات عالم مسخ دارد و فقدان به نقصان بیشتر می‌انجامد، نیز به همین میزان حقیقت دارد. ذهن بشر خلاق است و شرایط آرایش محیط و تمامی تجربیاتش نتیجه وضعیت شرطی شده است که بر ذهن او می میراند. البته رفتار و وضعیت ذهنی ضرورتا به افکار آدمی وستگی دارد. بنابراین میتوانم بگویم که رمز کل قدرت تمامی اکتسابات و تعلقات آدمی در هیئت و عادتهای ذهنی او نهفته است. اگر بشر قدرت معنوی را در تعلق خود نداشته باشد قادر به متجلی کردن آن نخواهد بود تنها راه تضمین مالکیت قدرت آگاه شدن از آن است و کسی از قدرت اک آگاه نخواهد شد تا روزی که دریابد هر بشری میتواند ابزار قدرت خداوندی باشد پس این را بدان که جهان بیرون جز باز از نقش درون نیست. البته منظورم جهانهایی است که زیر دومین بخش اعظم هستی قرار دارند و نتیجه برون فکنی اندیشههای آدمی هستند. نکتههای و وجود دارد که میگوید آنچه در عالم بیرون به ظهور میرسد همان است که ابتدا در عالم درون یافت شده است. در عالم درون و در نقطه تسراتیل پاسخ تمامی پرسش‌های جویندگان حکمت لایزال قدرت بیپایان و منچه جاویدان تمامی ضرورتها قرار گرفته و در انتظار شکوفایی گسترش و ظهور است چنانچه در سکوت بنشینی و با مهر به چشم معنوی از خیر شوی من به نزدت می‌آیم. و هر کمکی که بخواهی در اختیار قرار میدهم کافیست مرا ندا کنی هرگاه به طبانی بلغوه های آلم درون را شناسایی کنی خواهی دید که در عالم بیرون به خود چکل میگیرند، گیرند بازتاب هماهنگی عالم درون در عالم بیرون شرایطی هماهنگ محیطی سمیمی و های تمامی جوانب زندگی را در خود داراست وضعیت هماهنگ هنگ سری مناسب برای سلامتی و انصاری ضروری در عظمت، قدرت، افتصاب و وحدت با خداست همه درون به معنای قابلیت واگوداری خود به استاد حق است تا مسئولیت راهنمایی افکارت را عهدهدار شود و نحوه تأثیر تجربیات را بر تو روشن سازد. عالم بیرون موقعیت ها و شرایط آگاهی درون را انعکاس می دهد. فقط رها کن و بگذار استاد سکان را به دست گیرد. با آگاهی از حکمت نهفته در عالم درون، آن را در تعلق ذهن خود در می آوری ذهن هم با برخورداری از این حکمت عملا صاحب قدرت و حکمتی می شود که برای متجلی ساختن ضروریات یک دوسته کامل و هماهنگ حیاتی است تمامی دارایی های معنوی بر مبنای آگاهی است وارد. جمیع اکتسابات ما چه معنوی و چه مادی نتیجه انباشت آگاهی است. جمیع زیانهای ما در هر مرحله ای از طریق معنوی حاصل پریشانی آگاهی ماست. در نتیجه کارایی ذهنی مشروط به وجود هماهنگی و عدم هماهنگی مترادف با سردرگمی است. به این ترتیب کسی که قرار باشد قدرت کیهانی را از آن خود سازد مجبور است با قوانین معنوی هماهنگ باشد بشر با استفاده از ذهن مادی خود با جهان بیرون ارتباط برقرار میکند مغز عضوی است که کارکرد ذهن را در سازمان کالبدی ما عهدهدار است و نظام مغزی نخایی سلسله اعصاب آدمی را در ارتباط آگاهانه با اعضای کالبدش قرار میدهد. این دسته از رشه های عصبی مسئولیت تمامی تحرکات جسمی را به عهده دارند و موجب می شوند آدمی در جهان حواس به سر برد این را هم بگویم که هرگاه به شکل نورانی من بیاندیشی یا از صمیم قلب به من عشق بورزی افکاری که از میان نظام مغزی نخایی تو به کالبدت فرستاده میشوند سازنده و تحریکات حاصل از آن شورانگیز و هماهنگ خواهند بود به این ترتیب بشر از طریق عالم درون نیروهای سازنده را به زندگی خود راه میدهد اما عالم بیرون نیروهای انهدامگر را برایش به هم مقال می آورد بشر با استفاده از ذهن ناخداگاه با جهان درون ارتباط دارد شبکه خورشیدی سولار پلکسس عضو جسمانی ذهن محل جلوس نظام اعصاب سمپاتیک و پایگاه درونی تحریکاتی همچون شعف ترس عشق خیال و طایر عواطف درونی است یوگیها این شبکه را مرکز قلب نامیدند پیوند ما با قدرت اک و ارتباط ما با قدرت کیهانی از طریق این کانون برقرار است یک عارف هم عمل کرد و هم تناسب هماهنگ بین این دو مرکز را که راز عظیم زندگی معنوی بشر به حساب میاید می آید می با این دانش بشر می تواند تمامی امور خود را به روح خداوندی واگذار کند و به همکاری و هماهنگی آگاهانه میان انصور فانی و ذات باقی دست یابد سپس هدایت سرنوشت خویش من جمله کارما گذشته و آینده را تحت اراده خود خواهد داشت می میبینی که تنها یک قدرت تمامی فضای جهانهای کیهانی را انباشته و قماش آن قدرت ذاتن در تمامی نقاط حضورش یکسان است قادر مطلق عالم مطلق و حاضر مطلق است همه اندیشه ها و همه پدیده ها درون این قدرت حضور دارند همه چیز در اوست و همه چیز در همه جیز از اوست این همان است که در اکنکار قدرت اف یا جریان صوتی نامیده شده است و در جهان قد آن را خدا می نامند خدا تنها قدرت حاضر در جهان‌های کیهان است این قدرت میتواند اندیشد و هرگاه که میاندیشد، اندیشه‌هایش در قالب شیعی به ظهور می‌رسد از آنجا که این قدرت حاضر مطلق است باید در هر فردی حضور داشته باشد و هر فردی یک تجلی از این قدرت همه جا حاضر بر همه چیز واقف و قادر مطلق است ما توجه به این که تنها یک قدرت واحد در کل عالم توانایی اندیشیدن دارد پس آگاهی تو تنها می تواند در رابطه با این قدرت شناسایی شود به عبارت دیگر آدمی خود این قدرت است مثل این است که بگوییم من خدا هستم و خدا من است این درک هنگامی حاصل می شود که به طبقه پنجم از طبقات حسی برسی این, این است که قدرتی که در سلول مغز تو تعبیه شده همان قدرتی است که در سلول مغز همه دیگر آدمیان در حال کار است یکایی یک که افراد چیزی جز صورت فردیت یافته ترین قدرت کائنات نیستند. قدرت 1 یک انرژی بالقوه است که در قالب تمامی وجودها و پدیده ها متجلی می شود. و هرگ در عالم هستی است ناگزیر از به تجلی رساندن این قدرت است همه یکیست همان که صفات و نشانه های من در کالبد کیهانی هم تعبیر شده اند و کالبد کیهانی من هم به نوبه خود عالم مطلق قادر مطلق و حاضر مطلق است این نشانه ها ناگزیر در تمامی لحظات به صورت بالقوه در همه ابنای بشر همچنین در کل اشیای عالم انتظار ظهور میکشند بنابر این هرگاه آدمی می اندیشد افکار او مجبور است بنا به طبیعت کال برگیرد و در یکی از پدیده‌ها یا شرایطی که با مستر آن در انتباق باشد به ظهور برد کارفکسی از اصل علت و معلول تابعیت می‌کند. پس مطلقاً ضرورت می‌یابد که سکان افکارت را همواره در دست داشته باشی تا به ثانی شرایط مطلوب را برای خود فراهم کنی. تمامی قدرت عالم در درون تو تعبیه شده و چنانچه بخواهی، می توانی آن را تحت اراده خود به کار دسترسی به آن با دانش دقیق و به کارگیری داوطلبانه و مو اصول و قوانین مربوطه امکان پذیر است. با درک و اندوختن کامل دانشی که در این کلمات نهفته است می توانی زوند احکارت را به دست گرفته و به تمامی شرایط زندگی خود اطلاق کنی به عبارتی دیگر به همکاری آگاهانه با قانون قدرت مطلق نائل آمده و به طبیعت قادر به همه تیز استاد دست می که مبنای اصلی کائنات است قدرت اصل حیاتی هر اتمی است که در کل عالم وجود دارد. هر اتمی دائما در اشتیاق به تجلی رساندن میزان بالاتری از حیات به سر می‌برد. تمامی ذرات، بوشیار و در طلب نیل به مقصودی که برایش آفریده شدهاند در حرکتند بنابراین این می‌بینی که به منظور تغییر دادن هر معلولی باید ابتدا علت را تغییر داد. و این امر در همه طبقات هستی مصداق دارد. آدمی قادر نیست ببیند که چنانچه این اصر را به کار نبندد صرفا یک پریشانی را با پریشانی دیگری جایگزین کرده است. برطرف کردن نفاق فقط با برطرف کردن علت آن میسر می‌شود و علت هم همیشه در درون فرد نهفته است. سرچشمه عالمگیر قدرت اک از بالاترین جهانهای کیهانی تادر می شود و جهان بیرونی در هر طبقه ای که باشد ظرف تجلی این جویبار قدرت هست قابلیت دریافت بشر متناسب با شناسایی او از این سرچشمه قدرت کیهانی این جویبار الهی و این انرژی است که خودش روزنه ظهور آن و همسان تمامی دیگر افراد است. شناسایی یک روند ذهنی و یک فعالیت ذهنی است و بنابراین حاصل فعل و انفعال میان کارکرد قدرت اک در طبقه سوم و قدرت اک در صورت هوشیاری پیوسته است که در کل مکان نفوذ دارد و عامل حرکت تمامی پدیدههای حیات است. این عمل و عکس عمل ذهنی همان قانون علت و معلول است اصلیت از فرد نشعت نمی گیرد بلکه ریشه در قدرت کیهانی دارد یک رکن بیرونی یا محسوس نیست بلکه رواندی درونی یا نامحسوس است که نتایج آن در قالب تنوعات بیپایانی از شرایط و تجربیات مشهود می شود به ظهور رساندن حیات نیاز به قدرت دارد چیزی یافت شود که بتواند از قدرت کیهانی هستی داشته باشد. هر آنچه در قید هستی باشد، نوعی تجلی از این قدرت بنیانی است که همه چیز عالم از آن و توسط آن آفریده شده و در حال آفریش است. بحر در اقیانوسی انتها از این عنصر قابل انتجا و سیال به سر می برد که قدرت اک نام دارد. و این جوهره از ازل تا به ابد زنده و فعال است و از حساسیتی بینهایت برخوردار است اشکال فکری قالب و کالبد خود را از آنچه این جوهره به ظهور می‌رساند برداشت میکند. این را به خاطر به سفار که ارزش حقیقی در نحوه بکارگیری این قدرت است و در که عملی قانون الهی من وفور نعمت را جایگزین فقر حکمت را جانشین جهل هماهنگی را جایگزین نفاق و آزادی را جایگزین ستمگری می کند یقین داشته باش که برکتی برتر از عشق من برایت وجود ندارد این فقط آغاز حکمت و عشق توست تو باید دامن فهم و درک خود را تا سرحدات بسیرت آگاهی و ایمان به کلام زنده من گسترش دهی این برای بحث امشب کافی است شب بخیر